حتی دیدار آخر شاید رسید از راه برداير روز بهتر ولی که بدارت به و چشم دل به بازي باش دل به مندي که دلم سبزه پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا تجواه که قلب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام به همگی من فرشید منافی اینجا راژیو پس فردای شماری 956 امروز دوشنبه هفته دیمای 1300 94 چهار برو بریم خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها؟ امروز توی سومین روز از بررسی وقایه مهم سال 2015؟ میخواییم بریم به سراغ سیاست و یک نگاهی به پدیده ترامپیزم در دنیای سیاست بندازیم یعنی دونالد ترامپ با موزگیری ها و حرفاش به تنهایی یک به فرهنگ لغات و اصطلاحات سیاسی اضافه کرد امروز نگاهی هم میندازیم البته به برخی موفقیت هایی که جناهای توندرو تو انتخابات کشورهای اروپایی داشتن سعی می‌کنیم ببینیم چرا سال 2015 اینقدر برای ها توی اروپا و آمریکا سال خوشیومی بوده و اینقدر این سال براشون اومد داشته پس همین اول برنامه یک سلام مخصوصی باید ارز کنیم خدمت اون اساتید و بزرگوارانی که هنوز چاره حل مشکلات جهان رو توی لشکرکشی و جنگ و تحریم می‌بینن و برای باز کردن هر گری در قدم اول به جای دست از دندون استفاده می‌کنن و همین ابتدای برنامه به سبک نوشتایی که قدیمه پشت در مینیبوسا و تاکسی ها و اینا نوشتن خدمتشون ارز میکنیم که داداش مرگ من یواش نصفاک که حتی در حال نصفاک دادنم به فکرتم و برمات کش میدم شب بخیر قشن بزن، بالا بالارم بزن پشتارو خیلی ممنونم از شما دیگه حالا در تمام حالات و احوالات هم حالا دیگه نیاز نیست دیگه حالا به یاد ما باشی چه کاریه؟ یه وقتی هم بر خودتون بذارین سعی کنی روی دیگه تمرکز کنی به هر حال این که شما مصفاک میزنی به یاد من هستی اصلا هیچ مشکلی نداره ها ولی خب وقتی میگی شب بخیر این دیگه درست نیست به یاد من باشی من نمیدونم حالا هر راحتی میتونی این همه آقا آدم میتونی به یادشون باشی عجبو این یکی از چیزایی که خب چند سال توی خیابونای بخصوص شهرهای بزرگ دیده میشه ماشینایی هستن که قیمتشون به اندازه‌ی کل دارایی خاندان بنده و شماست کل هم با هم دیگه یعنی طرف ماشین سوار شده یک میلیارد پولشه خب اوکی ناز هستش ش سوار شده اما مسئله اینه که وقتی یه نفر دیگه مثلا با یه پراید 20 میلیونی به ماشین یه میلیاردی این دوستمون میزنه و مقصر هست دقیقا باید چه خاکی به سرش بکنه برای دادن خسارت اون ماشین ماشین یک میلیاردی یه گلگیرش غور بشه خون خب بیچاره باید سه برابر قیمت ماشینش بده بابت خسارت که اتفاقا نماینده مجلس هم در این باره ظاهراً خیلی دلنگران هستند گوش کنی. یه فردی قدرو گران قیمت سوار شده اومده خوردو 300 میلیون تونی تو کیابونا ویراج میده و ما نور میده یادم بدبختی بو زده بود بره زندان بله ظاهرا حالا یه طرحی عزیزان تو مجلس تسییر کردن که دارنده های خودروهای لوکس رو ملزم میکنه به اینکه برن ماشیناشونو بیمه شخص ثالث تکمیلی کنن تا وقتی از این تصادفو کردن ها مطابق قیمت ماشینشون بتونن بهشون خسارت بدم. تره بعدی هم نیست. ببین بای یه کار دیگه هم میشه کرد. یه پیشنهاد داریم. اونم اینه که خب انشالله ما قیمت ماشین که تو مملکت ما همینجوری داره میره بالا. ما میگیم یه ذره این روند افزایش قیمت مثلا پراید و پژو و ثمن و اینا رو هم سرعت بدن. سرعت نه بره بالا تا دیگه فقط کسایی بتونن ماشین بخرن که اگه زدم به بنزو BMW مردم پاس و مردم بیمهشون بتونه پاسوخگی خسارت اونا باشه. والا حل میکنین؟ حال میکنین واقعا؟ راه حل میذارم خدمتتون. حسن بیاییم به من برازبه به من رعی بدین تو انتخابات مجلس خبرگان به خدا؟ ارمنی الان جشن کریسمس میگیره؟ نمیگیرن؟ 25 سپتام مربوط هست به کاتولیک ها. ارمنی ها و ارسوری من... ها مسیحی هستن. ارتدوکس ها که الان جشن نمیگیرن. ارتودکس ها سوم یا 4 فروردین رو جشن کریسمس میگیرن. یعنی ای... این زاد روز حضرت مسیح هیچ ربطی به ارمنی ها و مسیحی های ایران مناسبت کاتولیک ها نداره؟ واقعا اینجوریه؟ ما نمیدونستیم ما. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم دیگه ببخشه هم وطنان ارمنی و مسیحی عزیز ما تبریکمونو پس میگیریم یاد اون باشه و حال اگه عمری بود و برنامه بود تو فروردین ما میگیم تبریک میگیم خدمتون مرسی از اینکه که تماس گرفتین و در این مورد تذکر دادیم اما چندی پیش دکتر دهدشتی نماینده آبادان در صحنه علنی مجلس انتقادهای خیلی تند و رو در مورد فساد بین مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن که در نوع خودش اگر نگیم 20 سابقه بغه ولی خب کم سابقه بود ایشون توی بخشای از صحبت‌هاشون به پرونده سعید مرتضوی هم اینجوری اشاره کردن آقای مرتضوی در دادگاه همچنان تصور می‌کند قاضی است با محافظ مسلح وارد دادگاه می‌شود و به جای اینکه دادگاه وقت دادرسی تعیین کند ایشان برای دادگاه تعین وقت می کند. سخنگوی قوه قضاییه ممنول خروجی او را رسما اعلام می کند اما در مورد لغو و صدای آن کمترین اطلاع رسانی انجام نمی شود با ارسال پیام نائب الزیاره ایشان متوجه می شویم که خارج کشور بوده با دعاگوی ملت ایران به ویژه بیمه شدگان است بله حالا شما اون روزنامه‌نگاری یا فعال اجتماعی رو که به جرم انتقاد یا دیگر اندیشی یا دفاع از حقوق ها با دستمند و پابند به دادگاه میارن و, و بزی کنار آقای مرتضوی که به گفته این نماینده مجلس بزی اینکه دادگاه وش وقت تعیین کنه ایشون برای دادگاه وقت تعیین میکنه حتی مثلا تو دادگاه هم با اسلحه و محافظ شخصی حاضر میشه در ادامه این نماینده مجلس گوریزی هم میزنن به شغل های قبلی آقای مرتضوی و اینجوری ابراز نگرانی میکنن همینجا از مسئولین در بالای قوه قضاییه میخواهم با توجه به فساد گسترده و قانون‌گریزی های این شخص عملکرد ایشان در مناسب قبلی را بازبیری نمایند ایشان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده ایشان در این مملکت متاسفانه قاضی بوده شایسته از قوه قضایی احکامی را که ایشان در زمان قضاوت خود صادر کردند مانند توقیف فلعی بیش از 120 نشریه و بیکار شدن اده زیادی از روزنامنگاران را مورد بررسی مجدد قرار دهد تا خدای نکرده حقی زائل نشده باشد با. البته از اونجا که شاعر میفرمادگر حکم شود که مست گیرند در شهر هر که هست گیرند این چه جای غربوش زیاد دقیق بشیم تو این مسائل و بریم مثلا گذشته رو شخم میزنیم پای دهها و ست ها مسئول دیگه هم میاد وسط که الان همشون از چهره‌های ارزشی و ولایت مدار نظام هستن و برای همین خب مصلحت اینه که فعلا فوکوس بشه روی همین پرونده خاص که ان شاءالله به لطف خدا به کوریه چشم دوست پیش منان نظام و انقلاب همین پرونده هم ختم به خیر میشه آقای مرتضوی سربلند و صرافراز همینجور که الان هم هستن البته از این پرونده بیرون میان میرن که در پست‌های مهمتر و کلیدی‌تر به نظام و اسلام و مسلمین فلان همه خدمت کنن ما که دلمون روشنه والا سلام آقای منافی من سرما خوردم صدام خیلی قشن بود یه زمانی آخو. ولی الان صدایی موتور میده صدای وست پا میده کی واقعا با بود <تصفيق> من اگه صدام خراب شد یهیچ وقت بر نگرده اون وقت کی جواب بود هوای تهران خیلی آلوده است خیلی نفرمایید با این چه حرفیه صداتون شما خیلی هم خوبه اصلا این خشی که صداتون داره یه جوری میدونی اصلا خاص و یونیک کرده بود ها؟ سامي چطور بود صداشون خوب بود صداشون عالی بود بنظر عالی بود صداشون ابس هم میگه میگه خوبه دیگه همینجوری شما سعی کن بیشتر اصلا بری توی دود و آلودگی و فال سرما و سرما بخوری شیشه خورده اصلا یه ذره بخور بنظرم یه خود این خش و اینو سرخ کردنی بخور خیلی آره حیف خوب بشین صدا از من بره به نظر ما اینجوری خب این دو روزه ما انقدر از آلودگی هوا صحبت کردیم اینه که دیگه واقعا احساس خفگی بهمون دست داده و از اینجا که این آلودگی انگار درست به شو هم نیست برای همین امروز میخوایم ازش فاصله بگیریم بریم به جاهای خوش آب و هوای ایران از وضعیت هوای اونجا صحبت کنیم. چند سال پیش سازمان بهداشت جهانی شهر پیران شهر رو به عنوان یکی از هزار شهر سالم دنیا معرفی کرد از نظر آب هووا و سرانه فضای سبز و بافت شهری و، اینجوری چیزا بعد پیران هم پیرانشهر خودمون البته الان خب هوا اونجا خیلی سرده امشب ظاهرا به منفی 12 13 درجه هم میرسه اما اگه واقعا میخواین یه مدت برین یه جو که بتونین با خیال راحت نفس بکشین بعد نیست یه سری به پیرانشهر عزیز خودمون تو ایران بزنین جان میگن خیلی سرده آره خب منفی 13 و اینا خیلی سرده دیگه باشه راست میگن پیرانشهر بزنین تابستون برین بزنین ببینم از این شهرای بزرگ دیگه کجا میتونین برین که عین یخ نزنین هم یه نفسی بکشین مثلا میتونین برین کجا بگم اون جنو با که گرم... ها چابهار چابهار خوبه به خدا بهترین جا چابهار ها به خدا دماشم هم یه چیزی بین 20 تا 25 درجه حدودا در نبسانه بهترین هوا پاشین برین یه چند روز نفس بکشین اونورا دیگه نمیشه چرا کار دارین بابا حالا یه سه روز از جیب بخورین سه روز اون کرکره مغازه بدین پایین کمتر پول در بیاری چی میشه مگه آقا به خدا سلامتی مهمتر از هر چیزیه موندین منم توی اون دود و دم که چیبش آخه پاشین پاشین بریم چا به حال سراغ رقابت های انتخاباتی سال 2015 از ترامپیز شدن فضا تا حجوم تندرو ها برای نگفتن به دوستی ملت ها ویامی شماره 956 بدانید و آگاه باشید در جامعه ای که مردم آن بیعصاب و پاتی باشند سیاستمداران مداران بیعصاب و پاتی هم شانس بیشتری برای جلب آرای مردم پیدا می کنند سیاست مدار پاتی در یک جامعه پاتی هم بر اساس تجربه حتی از بمب اتم هم خطرناکتر است و در هر صورت چه سود که در اثر وقایه سال 2015 همه ما پاتی شده گانیم ام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 شبی کد شهرام میشد بای بای بای خب از جنوب ایران دوباره برمیگردیم میریم به سمت یک غار دیگه میریم غاری آمریکا و میخوام بگم آقا اگه مثلا پنجاه سال دیگه مورخین بشینن درباره سال 2015 حرف بزنن غیر ممکنه درباره شیوع پدیده ترامپ و ترامپیز شدن دنیا حرف نزنن و از اون اثر شگفتی نکنن خب اخه این آقای ترامپ که خود خب میدونی یکی از علاقمندان به رئیس جمهور شدن توی آمریکا هستن و قبل قبلا کسی به این اندازه نمیشناخت هرچند که ماشاءالله هزار ماشاءالله ایشون سال هاست که قابل محاسبه نیست و کلا مثل خاندان هاشمی هستن تو ایران که همش میگن همه چی مثلا مال هاشمیه تو امریکا هم همه چی مال ترامپ میگن که خلافش ثابت بشه اما از وقتی پا به عرصه انتخابات گذاشتن چون تو سال 2015 ماشاءالله دیگه الان مامان باباها مثلا تو هایدرآباد پاکستان هم وقتی میخوان بچه‌شون از یه چیزی بترسونن میگن بگم ابو ترامپ بیاد انگار عمو ترامپ مثلا آمپول زنه مثلا خلاصه نظرات مشعشعانه آقای ترامپ تو این چند ماه اخیر از سال 2015 اصلا یک باب جدید رو تو علم سیاست باز کرد. اونم باب چشم تو ببندن تو باز بود قبلا ما امام امت رو داشتیم همچی کاری میکردن بعد معظم لح رو داریم که خب تو این مکتب سرامت هستن حالا خب آقای ترامپ هم این مکتب رو اطلاع دادن و به کمال رسوندن مثلا چه میدونم ایشون ادای یک خبرنگار معلول رو که از ایشون سوال کرده بود درآوردن یا مثلا به یه موذی خانومی که حالشو گرفته بود گفت که همونجوری پشت میکروفون رو تو برنامه یا همینطوری تو برنامه تلویزیونی گفته که شما اتمالا پریودی که این سوالا رو میکنید هر بار میزنید خلاص آقا آقای ترامپی میگم شما یه ترامپی میشنوی ان که کل ماجرا در حد همین قوه شنوایی میمونه به جای باریکتر نمیکشه امیدوارید اتفاقات انتخاباتی جالب سال 2015 یکیش نخست وزیر تازه برگزیده ی کانادا جاستین ترودوی. این آقای نخست وزیر نه تنها خوش تیپ و خوش برخورد و خانواده دوست و ایناست، بلکه فمینیست هم هست. اونم از نوع برابری طلبش نه از نوعی که کلاً خواهان ورچیده شدن و نسل مردها از رو زمینن. البته خب معلوم از نیست دیگه چون خودش مرده. توی مصاحبه‌ای هم که ازش پرسیدن جناب ترودو راست میگن که شما فمینیستی؟ سرش هم با افتخار راست کرد گفت بله، من از دوران دو دانشجوی فعال حقوق زنان بودم روز معرفی کابینش هم وقتی گفتن چرا نصف وزیرات زنن نصف مرد فقط یه جمله گفت چون سال 2015 دیگه از استقبال گرمش از پناهنده های تازه وارد به کانادا نگم که الان از پرده همه میرن درخواست پناهندگی به کانادا رو میدن نکنین این کانادایی هم تا قبل این آقا جاستین یه نخص وزیر داشتن تو همون مایه های ترامپ آمریکایی. کالیفرنیا، اون اتفاق سال 2015 من گرفتن سیزن شیپ آمریکا بوده. بعد سال زندگی <بادر> تو کالیفرنیا تونستم که اون پاسپورت آویرا رو بگیرم. آره آره، مبارک باشه. شیرینیشم یادتون نره. امیدواریم البته یه روزی برسه که هیچ ایرانی نیاز به داشتن پاسپورت کشور دیگه‌ای جز ایران احساس نکنه. ولی خب فکر کنم اون روز حالا حالا حالاها بعید می‌دونیم بیاد دیگه. امیدواریم ولی برسه. این هفته ما از شما سوال کردیم که مهمترین اتفاقی که توی سال 2015 برای خود شما اتفاق افتاده چی بوده مثل همین دوستمون که گفتن آمریکاشون رو گرفتن و گفتیم توی سال گذشته میلادی مثلا میتونیم بگین چه اتفاقی بیشتر زندگی شما رو تحت تاثیر قرار داده حالا این اتفاق گفتیم میتونی اتفاق تو زندگی شخصی خودتون باشه یا مثلا یه اتفاق سیاسی یا یه خبر یه اتفاق بزرگی توی دنیا افتاده ولی مثلا روی شما هم تأثیر گذاشته و مثال زدی مثلا چه میدونم توافق هسته یا مثلا تحریم ها بعد دیگه از حضورتون گفتیم که در این ایام کریسمس البته کریسمس که گذشت دیگه داریم نزدیک میشیم به سال نو خارجی گفتیم به ما بگید که این ایام وقتی میرسن این روزا چه حالی بهتون چه حس و حالی بهتون دست میده چی مثلا چه حسی دارین آیا مثلا مثل امام امت هیچ هیچ حسی ندارین یا مثلا یاد خارج میافتین یاد چیزای زرق و برقدار میفتین یاد رفیق رفقای ارمنی و مسیحیتون میافتین که البته گفتن الان جشن نمیگیرن э ولی خب بعضی غیر از اونها خب بعضی ها هستن که میگیرن غیر از ارتدوکس ها خلاصه اینکه از حال خودتون و از اطرافیانتون بگید در سال 2015 و در این دم سال نویی خارجی بگید به ما که چه خبر خبرو چیکارا میکنید در افسردگی پساکریسمسی و مشقایی ننوشته از بولونیای ایتالیا فریبا از زوریخ الویس از کرمان آرش از یاداوران احواز ممت خرگا به منه سوارش میشن منو بیبده خونه زن همسایه بلی اردشیر یار قدیمی و همشگیه پسفرد پاستاران شهاب از گرگان مجید سوزوکی تهران پویان از نصف جهان اه... خیلی باحالی دمت دمت نرم افشین جیز مشهد ایرج میرزا ببخشید ایرج میرزا از مشهد کیوان از کالچوغستان عباس یوکی از انگلیس سیاوش از علی گودرز کتایون و سینا زنجان شهرام از دماوند الهام و سعید شفیعیون از تورنتو کانادا سحر رضایی یوتیوبوری برفی این روزا ادموند از استرالیا سیدنی امین رحمتی هم از امارات کسایی هستن که پای اپلیکیشن رادیو پسوردو در iOS یا یعنی اونایی که iOS دارن امضا کردن خیلی متشکرم ایدم دادن باقر گفته برنامه شما رو از طریق تلگرام اخیراً دنبال می کنم خیلی تشکر میخوام از شما هستم ما خیلی مخلصیم شاکریم باقر جان و نیلا از مشهد گفته درود فرجی جان واقعاً دستتون درد نکنه بابت برنامه خوبتون حالا که این همه سال زحمت کشیدین برنامه رو بکنید برنامه رو بکنید 1001 که بشه 1001 شب حالا ببینیم چی میشه دیگه چاش خیلی ممنونم از توجهتون از ایمیلتون اه... ی ایمیل هم بوده سلام در آژانس همراهتونم هم. سپاس اسم نداره یه ایمیل بدون اسم دیگه هم داریم با سلام بهترین خاطره یه سال سال برای ما عزیمت به کالیفرنیا و دیدار دخترمان سیمین دختر عزیز بوده است اسم داره دیگه معصوم و هادی از احتمالاً از کالیفرنیا دیگه ممنونم از ایمیلاتون <تصفيق> سلام فرشی جان دیروز تبریک گفتی به دانشمنده ناسا بله. این مثل این که ناسا نبوده یه شرکت خصوصی فضانوری و فضا پیمایی بوده بله بله حق با شماست کاملا همون دیشب اتفاقا از ناسا با همون تماس گرفتن اول کلی تشکر کردن که ما ازشون تشکر کردیم به خاطر اینکه این فازو پیم ما عروسی رفته بالا و سی خونگی آوردنش پایین و توضیح دادن که کار اونا نبوده و حال ما تشکرمون ببینید ناسا به قوت خودش باقیه منتظر سایر خدماتشون بر اون شرکت خصوصی هم که این موشکارو سی خونگی فرود آوردن دستشون درد نکنه ما مخلصشون هم هستیم یار حضورتون بریم ببینیم توی اینستاگرام محمود گفته مهمترین برای ما اینه که شب بخوابیم به امید اینکه فردا نمیریم از گردشگین مختص همه سال میلادی و شمسی و قمری و تا سال بعد میشه محمود از زاهدان تو اینستاگرام کامنت رو داده واقعا من نه یعنی اینقدر وضع خرابه محمود جان حیف فکر کنم یکم اغراق کردین دیگه نه یعنی دیگه ایران هرچی دیگه سومالی تو زمان قهتی نیست که به هر امیدوارم امسال هر جوری که بوده سال جدید براتون سال بهتری باشه برای هممون بهتر باشه امیدوارم امیرالی سجادی هم تو فیسبوک گفته سال 2015 خودمونو چجوری گذرندیم با وعد وعید مسئولان و گرانقدر نظام که میگن تحریم ها برداشته میشه منتظریم تحریم برداشته بشه ببینیم دنیای بدون تحریم چیه بله ایشالله که انتظارها در سال 2016 به سر بیاد کلا سال بعدی رو با عشق و حال ناشی از برداشته شدن تحریم سر کنیم البته بگم اگه شانس ما سال 2016 هم باید همچی چشم انتظار بشینیم که اثر لقوه تحریم ها کم کم خودش نشون بده ولی دیگه 2017 دیگه ببینین واقعا داره دیگه 2017 اشقاله صد در صد من قول میدم و اگر خواستید ما ما در تماس باشید پسوردات رادیوفردا.کام ایمیل ماست دو ایمیل ماست سد و سه شماره ای اس ام در فیسبوک، گوگل پلاس، ساوند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. اپلیکیشن رادیو پاسوردار اونایی که آی استفاده می‌کنن یعنی از آیپد، آیفون استفاده می‌کنن میتونید دانلود بکنید. صدای خودتون رو به ما برسونین، صدای ما رو دانلود کنید بشنوید و یا صدای رادیو فردار رو به صورت زنده از طریق همون اپلیکیشن بشنوید. و ارز با کانال تلگرامی ما هم میتونید بهش بپیوندید زمن که شماره وایبر واتسپ و تلگرام ما دوسف 420 602-33-83-77 تلفون های پیامگیر ما هم دوسف 420 22-11-24-33-163 و, و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن با این شماره میتونن در تماس باشند دوسف 420-226-21-79-39 گل بسل فم مقشوق زدم به گردنم یوق زدم اخر سر تن شدم نشستم و بوغ زدم آخر غم خستگی بود یه یه دل بستگی بود نگاه کن به صورتت آغابت شکستگی یه مشت رد یه مشت ما کدی ماتی یه صفر ما سایتی یه خسرو ما ماتی خواستی ما با بزباد بیاد دل ام دل آزاد میخواد همشکوس خواب شب روز بکار با کمیش آزار با کمیش نقا نخستی ما با بزباد بیاد فایده زنده ای از حال شب بعد دل دل نخن ترند باش هر باس خنده بفته به بلش تو به بلش جارتی اونی که خوش وقتت میکنه اینم کار جزء سینا جازی ستاره بود. اما جونم بر تو میگی که چند وقت پیش تر هی توی کنگره تحسیب شد که خب به موجب اون تر قرار شد به بازمانده های قربانیان واقعی گروگانگیری توی سفارت آمریکا در ایران قرامت پرداخت بشه و دولت آمریکا خب میتونست برای پرداختن این قرامت از بعضی از دارایی‌های یعنی برای دریافت این قرامت از بعضی از دارایی‌های شده ایران توی بانک‌های آمریکا استفاده کنه از این ورم دیروز توی مجلس ایران یه طرح شد که به موجب اون آمریکا باید به خاطر کودتای 28 مرداد و جنگ ایران و عراق و کشته شدن حجاج توی عربستان به ایران غرامت بده البته حالا آمریکا چرا باید بابت کشته شدن حجاج ایرانی توی مکه غرامت بده رو ما متوجه نشدیم نگرفتیم چیه ولی خب حتما توی مجلس عزیزان تونستن یک رد پایی از آمریکا جهانخوار توی فاجعه حج امسال پیدا کنن دیگه ما کاری نداریم در کل فعلا اوضاع پیچیده شده و اینجوری که بوش میاد ایران و آمریکا یه مشکل رو نشستن و با هم دیگه حل کردن ده تا مشکل دیگه برات درست کردن والا به خدا اصلا توافق نمی‌شد بحث لغو تحریم ها و آزادی اموال بلوکه شده ایران هم پیش نمی اومد الان این مسائل هم نداشتیم دیگه خلاص رابطه ایران و آمریکا یه جوریه که یه گره رو وا کنن ده تا گره دیگه میخورن رابطهشون یعنی همچین وضعیتیه. محسسه شادی پراکنی حجت الاسلام شجونی برای سرگرمی شما و شادی بخشیدن به مجالس و میهمانی های شما برگزار می کند. اجرای هنرمندانه انواع جوکا و شوخی با مقامات بلند پایه نظام بدون عوارض جانبی میگن که اسرائیل با آقای جنتی گفته که تو یک هفته بنیر اگه دیدی اون بر دنیا بره دنیا بده من تو رو بر برمیگردم اسرائیل می‌خواست جنتی گل بزنه اجرای برنامه‌های ویژه و به یادماندنی تقلید صدا توسط استاد شجونی ملقب به شجونی دوحنجره ایشون گفت که درباره من چی میگن گفتم میگن اول خواستگار حضرت هوا تو بودی اما چون سنم بالا بود به ندادن آدم رفع وارده ایشون... <تصفيق> می‌خندید. گفت دیگه چی میگم؟ تعریف خاطرات شاد و سرگرم کننده در جهت سرگرم کردن میهمانان شما. من از دفترم اومدم پیابون دیگه ماشین مبذران یه خانومه به ما گیر داد. گفت که شما از این مملکت نمیری؟ ما شرتون راحت بشین گفتم خانم کجا بریم ما که آمدیم حالا بخویم بریم. بریم بریم. گفتم خانم کجا بن چی بریم؟ و دها برنامه فرح و متنوع دیگر در جهت گرما به مجالس و میمانی های شما مؤسسه شاوی پراکنی حجت الاسلام شجونی بله درست همه پیشبینی ها درست از در اومد قسمت جدید جنگ ستارگان رکورد زد کامران سلام سلام فارسی سلام همگی آر جنگ ستارگان در عرض 9 روز به که به نمایش درآمد تا دیشب تو کل دنیا یک میلیارد و نه میلیون دلار فروش داشت و فعلا به قول این خارجی ها نمبر 1 2015 است که فیلم داره پیش میره احتمالاً رکورد آواتار هم که فروش ترین فیلم تاریخ سینما شکسته بشه و مقام اول رو به دست بیاره بسیار مبارک خارجی ها بود دوستداران جنگ ستارگان از سینمای ایران چه خبر کامرا از چهارشنبه شنبه باید بگم یه فیلم جدید به نمایش عمومی در میاد به اسم شکاف که کارگردانش کیارادش اسدی است. بخشی از صدای رو با هم بشنویم برای من بیشتر توضیح میدم. بشنویم. شو درینم من قایم می کنم. نسیم چرا خودیش نراهونه گفتم؟ میدونم والا. خب میداراست کجا میگم؟ من میش گفتم تو مگه خودت قرار نبود برش بدی؟ ترجیح بدن که من بگم. چرا تو حالا بگو همینجا بگیم. میکن کم کم خوبه. آقا نگفتن بی خیال ما شو. صاحب داشت بچه‌مردم میگیری میاری اینجا. به منم نمیگی باند بله بخش از صدای فیلم شکاف ساخته کیارش اسدی زاده رو شنیدیم میگفتی کامران راجع به فیلم آره هونی توسلی بابک حمیدیان سر دولتچه‌ای و پارسا پیروزفر بازیگری اصلی فیلم هستن و فیلم تو گروه ماندانا به نمایش در میاد اما قبل از اینکه فقیشو من خدا کنم اینم بگم که 11 قسمت سریال شهرزاد امروز تو فروشگاه توزی شده چهارمین ترانه این مجموعه هم که دوباره باز محسن چاوشی خونده تو این مجموعه هست اسم ترانه هم هست شهرزاد بسیار خب. ممنونم ازت کامران عزیز باد خدا بیزی تا فردا و می‌ریم بخشی از این ترانه رو با صدای محسن چابوشی به نام شهرزاد میشنویم. خدا <تصفيق> پرده خدا تو رو از دور تلم دیدم ما نمیدونست چه سرابی دیدم من نمی چه میدونستم زندگی برام چه خوابی دیده نمیدونی نمیدونی ای اشک. کسی که جوانی شو ماریخته به پات واسه که تو رو از دست نده چه عذابی چه عذابی دیده با سلام بیستوی کسی دوشنبه شب راو زمن استقبال از استقبال ایران از استقبال احتمالی عربستان استقبال از استقبال ایران از استقبال احتمالی عربستان از, احتمال از بهبود روابطش با ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهابی امروز بایم شب آغاز می‌نماییم. وزخای نخست ژاپن از, از کره جنوبی به خاطر رفتار نیروهای این کشور با بردگان جنسی کره‌ای در خلال جنگ جهانی و نظر ناظران که آقا میزشینی 50 سال دیگه میگزش بعد ازخای میکردین حالا چه عجله‌ای بود؟ اظهار نظر مشاور عالی فرماندهی سپاه پاسداران مبنی بر دوچار بودن میرحسین موسوی به تفهم و پاسخ کاوشناسان به وی که اولاداش به نظر میاد شما متوهمترین که به نوه دی میگی نماسه مردمی بعد به بیست و پنج قرداد میگی تجمع مشتی عراض و باش و اعلام در گذشته 112 نفر در ایران به علت آن خوکی و انتظارها از وزیر بهداشت برای تکسی به این خبر و معرفی غم و غصه و تنهایی و بیتوجهی به عنوان دلیل فوت این افراد مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروح خبرها با همراهی همکارم بلبل بل. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه رومیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفته است هشت درصد مردم تغذیه ناسالم دارند و چهر و چهار درصد از مرکای قبل از هفتاد سالگی به تغذیه نامناسب و بیماری های غیرواگیردار ناشی از آن مرتبط است در همین رابطه یکی از کارشناسان امور کله و جگر کشور از مسئولی سولین خواست تا ضمن نظارت بر پزیها و ریگراکی‌ها برای تک تک ایرانیان کارت کله و جگر صادر نمایند تا مصرف این اقلام در کشور نظاممند شده بعضی از افراد سه وعده در روز را از این فراورده‌های چرب ایرانی استفاده نمی‌کنند پایان مجموعه اخبار آخ،, آخ،, آخ یادم رفت اینو عوضش کنم خوندیش رفت بولی آره بولی دیگه مگه چی باید میخوندم می‌خوندن چه تو پد گفته کارشناسه این کار بکنن که خود من اولین نفرم از دست میرم یعنی بولبول چی چیه بارم این کارشناس شما حرف درسته حسابی زده بود حالا شما کوتاهی مییید بله بولبول این کار نیست یا زندگی بدون کله و جگر هرگز تا ابد این شعار ماست نباشین واقعا سلامت باشید شما. بله، همکنون در خدمت کارشناوس مشکلگشایی برنامه جناب آقای برادر مشکلگشا هستیم تا مشکلات ما و شما را گشاویی کنند بله برادر مشکلگشا خب به بالاخره این سبتنام کاندیده ها برای مجلس و خبرگان تموم شد دیگه الان شما دارید چیکار می میکنید با پرونده های افرادی که سبتنام کردن؟ بله، عرض کنم که امانطوری بله. که مقام معظم رهبری فرموده بودن ما در حال عزیزم دیگه مقام معظمه رهبری چی فرموده بودن ما مشکل ببخشید دیگه اشتباه شد چیز خاصی نفرموده بودن نخیر هست تو ما متوجم این که ما در وزارت بر خود تکلیف میدانیم که مو به مو های ایشان عمل بکنیم نه که فکر کردیم چیز جدیدی فرموده بودن دیگه عجب خب بل... بالاخره چی شد مشکل بررسی صلاحیت ها چه صورت میگیره لطفا توجه داشتید ممکن که ما در وزارت خیلی کاره علمی و دقیقی میکنیم ولان در حال بررسی شجر نامه های عزیزان کنده هستیم او, او او شجر نامی؟ بل. یعنی چیاخی شجره نامه چرا مثلا چی کش کردید و چکل توی این شجره نامه؟ مبینید ممارد خاصی دیدم مم. میشه گاهی خب؟ مثلا همین چند لحظه پیش توی شجره نامه یک عزیز دیدیم که پسر عمه جد پدری مادر خوهرزاده نوه اموی دایش یک بار نری که دلا سوت فتنه‌گار شرکت داشت. یو <تصفح> <تصفح> خدا بل... خب پسرمه جد فلان یالو آخه چی جد... ربطی داره؟ ما بل... مشکل بعد خودت میگی جدشه. زمان جدش که فتنه نمیده که این سن. اصلا... خب با جد فتنه‌گار هم آه... بدنده‌ای. آه... ف... خب این جد بین‌ها اینها رو فتنه‌گر برآورده. با دیگه... خسرا باشی. بل... خب الان ن... چی میشه؟ چی کار میکنید با اینا مشکل؟ ما دیگه ما این سدرانم هرام با تفسیرم مربوطه ارسال می‌کنم. اولا این نگاه بم من اونجا حضرت آیت الله جنتی و باقی عضا رشیدینی میکنن میلیم علی دیگه خیلی دیگه. بله. پس دیگه خیلی حساب نکنیم روی این انتخابات هم دیگه نه مشکل این نه نه تو فقط خیلی انتخابات شورای شهر خواهم بود و مردم در آن حماسه ها خلق کرد تا دل مقام معظم رهبری شاد بشه علی دیگه بله. احتمالاً میشه هم وسیه شجره نامه بله باش با تشکر توجه شما تابشبی شبی دیگر و برنامه دیگر و شجر نامه دیگر خدا نگهدار برنش هستم از پاریس بهترین اتفاقی که برای من در سال گذشته افتاد برنده شدن در کنکور بهترین های فرانسه در بحب. رشته نقاشییه روی اببرشن بود اسم کنکور هست می فره دو فرانس و بعد از اون ملاقات با رئیس جمهور فرانس ها اولان در کاخ خیلی بود میام میانوم می آز چی بود سای؟ می وریه دو فرانس یعنی چی؟ می وریه دو فرانس و یعنی چی؟ یعنی چی میگم؟؟ بهترین کارگر فرانسوی ولی در کلیه باری کل, کل نقاشی روی ابریشم باری باریکرلا لا باری کلو نشده بودم ولی دمع شما گرم حالا ایشالله دیگه بعد از فرانسه و اولان دیگه امسال با خود اوباما تو کاخ سفید دیدار کنین دیگه رب. البته خب بگم ما چون ایرانی هستیم درستره که بگم ایشالله سال دیگه با معظمله تو بیت دیدار کنین ولی خب ایشون فقط میگه آورین آورین همین دیگه تموم میشه بعد نه این آرزو نمیکنم نه به فراموش اصلا ولش کن اما توی اروپا هم ماشالله هزار ماشالله چشمشون نکنم از این حزبای تندروی علاقه من به نجات پرستی کم نیستن خدا رو شک تا امروز تو خیلی از کشورهای مهم اروپا این عزیزان نتونستن به مقام خاصی برسن همین بربچه های تندرو و اینها ها و خب نتونستن به مقام خاصی برسن روی تصمیمات مثلا مهم مقاره اروپا در رابطه با پناهجوها یا پرهیز از جنگ بخوان تأثیری بذارن منتهى اینا کلا میدونی ویژگیشون اینه که نشستن آماده تا یه دیوونه ای بره اسلحه برداره یا گندی یه جای اروپا بالا بیاره بعد سری بودن تو خیابونا که آی بردن اوه کشتن به ما رسیدین تا این فلان فلان شاده ها رو مثلا بیرون کنیم براتون البته تو بعضی کشورهای اروپایی هم بعضی از این آقایون و خانم‌ها به مقامات بالا رسیدن مثلا یادتونه تو ماجرای پناهجویان مجارستان تو مرز چقدر بد برخورد کرد با این بندگان خدا و در برابر درخواست اینا که فقط میخواستن از این کشور رد بشن برن به سمت اتریش و آلمان با گاز اشکاور و باتوم و مشت و لگد و اینا عکس امن داد یا مثلا تو همین این کشوری که الان ما هستیم یعنی جمهوری چک که تقریبا در مرکز اروپا قرار داره رئیس جمهورش آقای میلوش زمان بعضی نظراتش در باری پناهجوها جالبه مثلا ایشون گفته که معلوم است که وقتی بچه های کوچک را می‌بینی که گریه می‌کنند متاثر میشوی مگر انسان نباشی اما از طرف دیگر باید از خودت بپرسی چرا این مردم بچهشان را به این روز می‌اندازند سوار قایق پلاستیکی می‌کنند وقتی میدانند خطر غرق شدن چقدر جدی به نظر من از این بچه‌ها مثل سپر انسانی استفاده می‌کنند بله دیگه طرف خون خون رو سرش خراب شد آقا شبانه روزم زیر بار موشک و و گلوله است بعد دوستامو میگه اینا از بچه‌هاشون به عنوان سپر انسانی استفاده میکنند. انگار طرف اومده مثلا سفر تفریحی با قایق لاستیکی. بابا، حاجی، عمو، میلوش، شما خونت خراب رو سرت میدونی یعنی چی؟ بچه جلو چچو تیکت تیکه بشه میدونی یعنی چی؟ هر چی روهات عمرت داشتی سه سوته دود بشه بره رو هوا میدونی یعنی چی؟ خب نمیدونی دیگه. فکر میکنین طرف مثلا طعم آب جوش مثلا ناراضی بوده، پاشو هم راهو فرار کرده اومده. نمیخواید کسی رو را بدید تو کشورتون ندید چهاردیواری اختیاری ولی دیگه از این حرفای قشنگ قشنگ نزنید یا آدم دوشار تشنج میشه با شنیدنشون والا برو بریم فری غریب چه خبر از بهترین های 2015 سلام سلام سلام به همگی امروز فرشید از رنکین که پردرآمدترین ورزشکارای 2015 بگم که صدر فهرس متعلق به فلوید میودر وکسور وکسرو آمریکایی با درآمدی حدود 300 میلیون دلار در سال جالبه آره ماشاءالله تو این لیست مسی خودمون با درآمدی نزدیک به هفتاد و چهار میلیون دلار پنجمه اما رونالدو عزیز. یه خود بالاتره 80 میلیون دلار حدودا در سال گیرش اومده سومه این عددا رو ضرب و تقسیم بکنی البته ضرب تقسیم که نداره در تومن خودمون خیلی هر چی درشت و چشمگیر میشه عجب من موندم مسی رونالدو بفهمی کردیم خیلی بالاتر از این حرفام ولی پیش این بوکسورو سوسکن رسما یعنی آه. اصلا خیلی 300 میلیون کجا 80 میلیون کجا ولی افریدوس قابل مقایسه اصلا نیست با درآمد ورزشکارای خودمون ها از ایرانی‌ها آره اصلا زمین تا آسمون اصلا فرقشه. از ایرانیایی ایرانی‌های 2015 چی امشب از تکواندو بگم مهدی خدا خداابشی با درخشش تو رقابت های بین المللی 2015 به عنوان بهترین ورزشکار سال انتخاب شد. فرزان آشورزاده نابغه تکماندوی ایران هم با یه مکزیکی عنوان بهترین ورزشکار سال که به المپیک رسیدن و از آن خودشون کردن این فرزان آشورزاده خیلی جوونه و خیلی داستان داره و یکی از امید های المپیک یه استخار نصیب خانم کتایون اشرب سرمربی تیم ملی الاوم قایقرانی ایران شده. از طرف رئیس اکانومی جهانی غایقرانی دعوت شده تا بر مراسم اسکار جایزه پاروی تلایی سال 2015 شرکت کنه در شهر بارسلونای اسپانیا. بسیار خوب مبارکه مبارکه انشالله به خاطر شرکت تو این مراسم بهش گیر نده دیگه چه خبر فری برس؟ امشب هم یه خبر حسن ختامی بامزه دارم صحبت های محمد مایلیکوان که این دفعه گیر داده به قد گاسپار دستیار کهروش و مربی دروازبان های تیم ملی که اگه باشی گوش بده. بهشون می فکر کنم آمریکا باشن یعنی مقر اونجا هستن هم میتونین بپرسید کیشون عربیت کجا بودن چهجری بودن بعد از میانگیین بدیشونم شما میتونین متوجه بشین که اصلا اینشون بودن یا ن من فکر نمی هیچ جا اسپشون رو ت باشه بله خیلی متشکرمع این اجقا مایلی هر چند روزیه بار به کیررش و خواندن و اطرافیان و فامیله و اقوا معینا بلخرری یه جوری گیری نده اصلا حالش بعد میشه ولا دستش عادت بله نکنه دیگه به حال ما برنامه ما برنامه داریم نیاز داریم به ایشون بله خدا عجوج میشه این گاسپر مربی مربی مربی تیم ملی پرتغال بوده رو نیمچه تیم ملی پرتغال هم نشسته فشی بله ایشون باید با قدش کار داره خیلی ممنونم از زاد فریدورز عزیز باد خدا حفظی تا فردا تا فردا خدای نگهدار سلام امیدوارم که سلام بعد از این جنگ سوریه یک حکومتی بیاد که طرفدار ایران نباشه در غیر این صورت باید تمام هزینه های جنگ و آبادانی اون کشور رو از جیب ملت ایران بپردازند. متاسفانه افشین استان بلاد کفر انگلسان آی گفتی آی گفتی افشین جان البته ببین فرقی هم نداره چون اگه حکومت جدیدم هم همسو و هم با ایران نباشه کمک‌های بلاعوض ایران به جیب مخالفین حکومت میره یعنی بالاخره از جیب با میره منطقه تو جیب کی میره دیگه آل بستگی داره که تو سوریه کی به حکومت برسه این مهمه اما خانم آقای دکتر دختر خانم آقا پسرها بد نیست که حالا که داریم سال 2015 رو مرور میکنیم یه نگاهی هم داشته باشیم به پیشرفت ها و دستاوردهای های علم و تکنولوژی تو این سال سال گذشته برای اولین بار ناسا توی سطح کره مریخ آب پیدا کرد دیگه یکیش ناسا بوده آوشکت خصوصی نبود آره این ناسا سطح کره مریخ آب پیدا کرد بعد از اونجا که خب هر جا آب باشه اتنمالا حیات هم هست ایشالا امسال دیگه یه ذره دقیق تر بگردن و اینا آدم مریخی هم کم کم پیدا میکنن به سلامتی یه اتفاق مهم دیگه ای که باز تو عرصه هوا و فضا اینا افتاد این بود که تلسکوپا توی یک جای دور و دراز توی یک کهکشان دیگه یک سریارهی رو کشف کردن خیلی شبیه زمین خودمونه اسم این سیاره هم زمین دو گذاشتن حالا منتظر ببینیم بالاخره میتونیم تو این جهان به این بزرگی از تنهایی در بیایم یا نه ببینیم شاید اونجا هم کسایی هستن شبیه ما اما از فضا و کهکشان‌های دوردست که به زمین بیایم برگردیم سال 2015 یک نوع جدیدی از آسفالت اختراع شد که آب رو مثل اسفنج از خودش رد میکنه و شاید با همین اختراع دیگه چند وقت دیگه پدیده آب گرفتگی معابر به تاریخ بپیونده علاوه تو بگم تا این اختراعات و اکتشافات و اینا بخواد به ایران ما برسه احتمالاً یکی دو یک دو تا نسل دیگه اومده و رفته ولی حالا به هر حال از الان میتونیم برای نوینی نتیجهامون خوشحال باشیم دیگه تا این همه بارون میاد برای رفت آمد تو خیابون مجبور نیستم با چهار تا بیخ بزنم بالا اما با مذه ترین دستاورد علمی سال 2015 برمیگرده به تبدیل صده ها و دریاچه‌های در حال خوش شدن به استخرهای توپ البته توپ بگم نه به معنای اون توپ بلکه این توپ یعنی استخره چجوری تعداد زیادی توپ توش هست حالا چجوری اینجوری که برای جلوگیری از تبخیر آب دانشمندا اومدن ها توپ کوچولو رو توی ها ریختن که شناور شدن این توپ ها روی سطح آب باعث میشه که باعث میشه که آب کمتری تبخیر بشه و جلوی بحران کم آبی تا حدی گرفته بشه تصور کنید خیلی بامزه است به بخصوص جون میده برای کشور ما که علاوه بر کم آبی امکانات تفریحی هم خب کمه با این کار با یه دو نشون میشه زد یعنی هم بازی برای مردم تحسیز کرد هم جلوی کمابی رو گرفت اما تا هیچ برید نیست اگه از این کارا تو کشور ما بکنن بعد چند روز اصلا توپی نمونه تو سدها یعنی میبینی طرف رفته سفر یا عالم توپ برداشته با خودش برده یعنی حداقل اقل حزینه های توپی خانواده رو اینجوری میخواسته توشون جویی کنه دیگه اینم یه مدلشه دیگه. آیا قبض آب و برقتان عقب افتاده است؟ آیا علاقهی به صرف جویی در مسافه گاز ندارید؟ آیا فکر میکنید آلوده کردن هوای شهرها با تنظیم نکردن موتور خود را از حقوق حقه شهروندی است؟ با توجه به تلاویه ها و تحکیدات معکد مقامات ارشد نظام از امروز تا زمان انتخابات تمامی اینها البته که حق شماست؟ این شما مردمید که باید تصمیم بگیرید که آیا لازم است قبضهایتان را پرداخت کنید یا نه این شما اید که باید برای سود وام های بانکی تصمیم بگیرید ای واید خود مریم بده دید یادم رفت بول گازو بدم حالا قطعش نکنن وسط زمستونی دیگر نگران نباشید با بخش نامه از طرف وزارت کشور به تمامی استانداری ها از امروز تا پایان انتخابات قطعی گاز و آب و برق دیگر فقط یک خاطره بد است این آب و برق و گاز متعلق به خود شماست است بخشیدهای دکتر من این ترم هر کاری کردم نتونستم شهریم رو کنم میشه برام قسطیش کنیم هر شهریه شهری برای تحصیل توسط هر ایرانی یک ننگ فراموش است. تحصیلات رایگان حق شماست همه چیز رایگان حق شماست از حق خود تا پایان انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی نهایت استفاده را ببرید ستا به گرم کردن تنور انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی سال 1394 پیشخون روزنامه افتاوی از به نقل از امام جمعه مشهد امروز تیتر زده بود که نگذارید زنهای بدهجاب به حرم امام نزدیک شوند علالشم که بدون چادر راه نمیدن کسی رو تو حرم کرد. احتمالاً منظورشون اینه که از این به بعد خادمین حرم مثلا دم عوارضی مسجد وایسن به خانم‌های مثلا بی حجاب اجازه ورود به شهر رو ندن خدا به خیر بگذره روزنامه ابرار اقتصادی امروز تیتر زده بود که شیب قیمت بلیط هواپیما سرسام آور شد یعنی خود هواپیما هم موقع تکاف از روی باند ب... با این شیب نمیتونه سعود کنه که بیلیتاش سود کرد امشب هم تموم شدیم مصطفی صابری گفته عاشقی دردسری بود نمیدانستیم حاصلش خونجگری بود نمیدانستیم. پرگرفتیم ولی باز به دام افتادیم شرط بیبال و پری بود نمی دانستیم. آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهممان بیخبری بود نمی دانستیم. آب و جاروی در خانه ما شاهد بود از تو بر ما گذری بود نمیدانستیم. این همه چشم به راهی نگرانم کرده آشقی دردسری بود نمیدانستیم شبتون پر از عشق و بی سر و زندگیتون سرشار از خوشبختی اونجا رفت دنیام رفت دوست دارم حتی بازیاشم من شبا با عکست می تیز نه چشماتم ولی رایی نزاشتی بازم نمیخوای دیگه پیشت باشم مرسی که بودی تا این جاشم امیدونم خوش بخشی بریم دست من رو هرچی خودت میخواستی و باشی بری رفیق نیمه را همون چی گه گه گه گه من و قصه با غم با آره اینجا دور همیه چه شهر بلیه که خوب توش توی تو هم بارو مثل بقیه یه چشم اش یه چشم خون حسرت یه روز خوب به کنار اسمم بود ولی پیشم نمون شاید قسمت بود